رحمان الرحيم لا الحمد لله صل الله علی سید رسول الله و آله الضید المعصومین جميع رحمنا برحمتك و رحمنا در درباره رشوه یا رشوه یا رشوه میگن هر طوری درست است عرض شد در این باره ابتداع متعرض به اصطلاح آیات مبارکه شدیم که آیاتی که در مانحن فیث داریم یعنی به درده رشوه اصطلاح میخوره اینها مختلفند یعنی یک مضمون واحدی ندارند مزامین متعدد دارن آیات مبارکه و دلیل این در دست نداریم که همه رو به یک مضمون ارجاع بدون و از مجموعه ای آیاتی که ممکن است در ما در باورشه و تمثب شد ولو غالباً به یک آیات هم اما میشه به مجموعه این آیات تمثب کرد بعضیاش به خاطر خود ظاهره آیه بعضیاش هم به خاطر تفاصیلی که شو بدون. یکی آیه مبارکه لا تاکول اعمالكم دیناكم دین باطل و, و اینو که این توضیحاتش رو بعد از سایه که دل یعنی به اصطلاح همون در همون صدق واردی که میکنه آب در بیاره تدلو اونجا آمده که در اون نزدون اومد اصلا که خدمت با که یکی این آیه مبارک هست یکی آیه مبارکه یه که ارز کردیم آیه صحبت در مدینه آمده و قبلش صحبت یهود و مساره احتمال میدن ولو آیه در لغت عرب سعی کردن برای صحبت یک ماده عربی پیدا کنن احتمال میدن عبری باشه چون آیاتی هم که برابوته به من چون که عبری باره اگر اونجایی که دیده باشم احتمال میدهد این کلمه در ریشه اصلیش ادری باشه چون حضر کردم در مدینه منوری نقداری فرهنگ قرآنی و روایات احلی مدعات رسول الله متاثر به فرهنگ یهوده در مدینه یهود کاملا جا داشتن و خیلی مستقر بودن یعنی مناطق ورد مدینه چون حضر کردم که مدینه تقریبا حالت شهرک شهرک بود اینطور نبود مثل شهر قب یه شهر واحدی باشون مثلا آلیه یک طرف بود سافره یک طرف بود بنی نوزیر یک طرف بودن بنی قریزه یک طرف بودن بنی غینغال یک طرف بودن هر کدوم از این اشاره عرب عوض یک طرف بودن خضراج یک طرف بودن و اشاره دیگری که در مدینه بودن در مثلا مجموعه ای داشتن حتی همونطور که در اون شعرم علی مجموعه خانه‌های های بنه هاشه یک جا بود این حالا پر مجموعهی داشت من لذا تأثار حراوانی به یهود به خاطر وجود یهود این تأثار یهودی خالی نخالی در مکه وجود نداشت مثلا در مکه ما شواهدی نداریم که حتی یک دانه یهودی هم وجود بود به خلاف مدینه که سه اشیغه معروف سه نسبتاً معتنابه از مدینه یهود بودن این سه تو قبیل یهود توی مدینه بودن بقیه هم خارج مدینه که وقتی شمعی دادن واجب تواجد یهود در مدینه و اصولاً آیا این یهودی هست و اون یهودی هستی بودن خود این محل کلام هست. تو دنیا یهود این یهودی که در مدینه بودن محل کلام حالا آدی آلم برمی ازیر و برمی اولایزو و برمی کارشون تقریباً اگر توی بقیه دیستی یعنی اون توی به تحه بقیه باشه اون مقابلتون بنیقاریزه بوده دست راست به طرف بین بنیقاریزه و مسید قبار بنی نظیب و بنی حینقا بودن این طوری در مدینه پرشیده به هر حال حالا بایدون بخشه نمیشین احتمال میدم خود من احتمال میدم که این به اصطلاح این لحظ لحظ اقریب باشه ارز کردن در قرآن کریم در آخرین سوره قرآن که مائده باشه که آخر اون را نزله نمیدینه سوره ماعده است که آثاری یعنی هم داره سابقا اشاره کردن در این سوره مبارکه سه بار لفظ صبح به کار برده شده. جای دیگر به کار برده نشده. آیه 42 داره 62 و 63 فقط همین سه آیه در سوره مائده لفظ صبح و اكل المصح این سه بار در سه تا مغارب هم اولیش با دوبارمی سرانش دیست فرد و صحبت هم حاضور هم مثلا لبین حاضور بعدم با به برموند نصارا و مسیحا اهل اینجیل و اینها احتمال بسیار غیر میدن که اصطلاح اونا بوده که به هر حال در لغت عرب حالا هرچی در لغت ابری بوده صحب به معنای استعصال و ایشکنی آمده ولیذا مصطلح شد هر مالی که بنیاد انسان رو میتنه بنیاد کم مالهایی که بنیاد کنه, کنه. استعصال بیدیم اون وقت مخ... این یک مثله یک آیات صحبه توی زیر زیده... دو تا بعد از آیه صحب داره و من لم یحکم به ما انزلالله فا اولاکه همون کافرون از آیات بعدش داره و من لم یحکم به ما انزلالله فا اولاکه همون فاسقون باز یک آیه ای آیه آیه خاصله بعد سبا من لم به ما انزال الله فا ظالمون همون لالمون سه سال هر سال بحث دارن در تفسیر که چرا سه تا نقطه آمده کافرون و فاسقون و ظالمون این سعایه هم برشی در حکم تفسیر شده چون اگر انسان پول به قاضی بوده که به او و حکم کنه، مثلا من لم یهکم به ما انزال الله درستان البته در ربایات ما ربایتی که الان داریم ما ندیدن اما مضمونش آمده اما در کتب اهل سنت شرا حلیان هم نهارو کردن که وقتی گفتن امروشافق الحب حضرت همان من لم یکم به مهندالله الله اولایکم همون کافیمون اما در کتب اهل سنت از عبدالله مسعود هر سایه نهارو شده که عبدالله مسعود به هر سایه کرد. کرده من لم یکم به مهندالله هر سایه ر هم کافرون و هم فاسقون و هم ظالمون اما تو روایات ما اشاره داره ولذا در روایات ما آمده و هم مره شافل خوب فضاله کل کفر بلا این اشاره در آیه است. پس این هم آیه دوم و سوم شد یه آیه دیگه هم که شاید مثلا در رفت با این باشه و من یه لول یه لول به ما غیر چون در بعض از را داره که از قلول سعال کرده. که این رشه به حسای از غلوم حساب شد. این مجموعه آیاتی که ممکن است به در مانه و, و اما به نسبتی به روایات از کردن یک روایات بسیار معروفی هست لحن الله الراشی و المحتشید. و یک روایت هم است لحن الله الراشی و المحتشید و رائش الَّذِي يَثْعَ این هم دارن احل سنت. البته این خب لوگری خوب میشه، لذا سرکوزن کامل رشابل یک باب راشه، باب دیگریه راشه، از باب راش یاریشو، بابه با یادی آس از اجفتی یا ایه. اینها نقص بابیه، از چی بعضی احتمالاً که نقصی یادی باشه، رشیه باشه، لکن زمان رشندن ازش این نقص بابیه، اون اجفتی یا ایه اونه. و در یک روایت واحده که در کند چیز در کند در امال هم نعروب کنه اینجور لعمل راشی و المرتشی و مئزا بین همون زفتش کنه مئزا خیلی خیلی خیلی نکنم که مئزا در جنی چی اینه من هنوز خیلی نکنم و مئزا بین همون که اینها هم. یا حقیقت این لفت چیه خیلی نگشن یک کتاب مختصر نباکنم علایه حاله این روایت خوب الاده مشهوره ارز کردم در کتب اهل سنت موجوده لعن الله الراشی و المرکشی در مثلا مسنده احمد شاید اون هش بار نه بار ده بار ارده به جای مختلف هم ارده لعن الله اما با رحم شهرتی که این باید داره در کتب شیعه نیامده خیدم عجیبه این با تمام شهرتی که داره تو مسادر ما اصلا نیامده بعد هرز کردیم کنارا هرز اون نظریه که من رو ماید رو جدیم هم یه روی خیلی به نهل سنت باید باشه این به با همون شهرت احتفا کردن با هم هم هم هم. امزا طرف هم هم. با که در طرف این لیکن انسان به قضیه روی با اینکه مشهور است و خوبی هم داره لیکن باب هم در میان اهل سنت بخاری رو نقل نکرده مسلم هم نقل نکرد اما به نظرم مستردک نه حدیث کرده گفت آره علا شرط عهده ما یا شرط یا صحیحانه چیزی هم گفته مستردک علایه هاون توی صحیح بخوایی و مسلم نهامده اون حدیث خیلی مسترده و مثل نکته این که شما میکنون خب چرا دنبال حدیث چون بحث لحظی خیلی مهمه در که اصلا رشد حقیقتش چیه چون این شبه عصایی اصلاح که ما مشکل اساسی ما این که حقیقت چون بشه شراحلی که داره نشون میده با عنوان از رشا یرشو و رشا گفتن در لغت حرم به معنای ریسمان رشا و ریسمان آماده و حتی گفتن خیلی به اولشان آقا میگن که باید معانی محبوله در گشت معانی محسوسی داشته باشه. مثلا معنای محسوس گفتن رشا فرخوه الا امه هر این جوجه یوگه رشا رشای این ترک بلند کرد خودش به مالیه شما نگاه میکنه این رشا رو به رسوندن رسندن رسن کردن. میکردن اگه با مثلا شبیه این کلمه رو در پارسی یه چیزی باید مرابیت مثلا رسانه که انمای انسان رو میرسانه به اون مخصوبی که داره شبیه ریسمان همیش مثلا ریسمانه مثلا یه چیزی شبیه رسانه مثلا در پارسی معادل کلبی رشه ادعاشون اینه در اینجا مشکل کار من هم مشکل رو بگم بعد وادد بشیم یکی اطلاعی که این رساندن به جمعه مراسلش حرام باشه این مشکل هست. اینه که ادعه از اقوه ها سنی و شیه آمدن نکافی رو در این رسانه در نظر گرفتن رساندن. اون سردش مثلا دقت بکنید گویوط اون طرفی که پیش پول میرسونید نه هرجش میرسونید اون هم کار حرام انجام میده من که این رو میخوام بکنم حرامه اصلا پول میدم که به نفع من باشه اینجا راشی و مرتشه هر دو کار اشتباهه یه دفعه من پول میدم برای من باعث نیست مثلا من بیخود زندان کردم باعثان دادگاه بیخود منو زندان هم. من پول میدم که به حق خودم برسم از زندان آزاد بشم برای من که راشی هم حرام نیست برای اون مرتشی که بی خود من زندان داسته پول بگرد تا من نوازازون برای اون حرام دقت می این این نکته فرمیش اینه که حالا برد هر هم میشه در عکس این هم میشه باز برای مقتی حرامه در مقتالع حرام نیست یعنی صحبت اساسی در با رشته بیشتر اون جهت لغوی و در تفریات فتری و این تفریق آتونکات مبتنید بر این طور مستند ما چی باشه؟ مثلا من نمیه به ما انزل الله و الله و اما کافه بود. این مستند باشه عنوانش من نمیه اگر عنوانش لا تأکل و انوالکن بینکن بالباطل و تدلوب هایرال حکام باشه این به قضاوهت نمیخوره. به معمول شهرداری هم پول میده. پول میده برای که فرسیم مثلا دیوار همسر خرابتون. فرسیم اوام بازار مکنی. این تدروبه هایلالحکام هم لازم نیست حاکم و پادشاه و امیر باشه دولت به معناه مسئولین نظام مطلقه است با قوله به کسی بایم گفت که از اون سخور میگه تا وزیه تا پول نباشه کار نمیکنه کنه از این بالا تا پولی داده نشه مثلا این کار انجام میده پس گاهی اوقات عنوان به اصطلاح رشغه مثلا این عنوان تدروبه هایلالحکام هست کار اصلا عنوانش عنوان صحبه صحب یعنی حالا پس این معمی لغویش آنه حلاک اینم تا توضیح ما بذاشت راجع به صحب در کتب اهل سنت محدود آمده ستا آمده از پیغمبر خمبر مرگن ستا حالا بعد همه شما هم می در خود کتب اهل سنت از انگیر نقل کده از صحبه سمانی ما نداری میروازه اهل سنت دارن ما یه بحث مفصلی از درهوم میر دیزه اساس هیچ ربات جعفر همین در جعفریات تمام اینا بحثا شدهشون دیگه تکرار نمیکنه و ما ممکن است بگیم هر پولی که در جامعه مضر باشه هر پولی که اون نظام اجتماعی رو در خطر قرار بده مثل پولی در زمان ما این دیگه فرق نمیکنه عنوان از مراد absurd هر پولی که بنیان کنه ریشه اقتصاد رو میکنه به هر معنی اینو خوب دقت بفرمایید من الان اینجا عرض کردم که من رو هم وارده درست که ذهنیت مبارک باز بشه. ما این در واقع فقر مهمترین قسمت فقر اینه هم اصل مطلب رو چه جور اثبات بکنیم و هم در تفریعات چی جور وارد بشیم و این عدله رو که نگاه میکنیم با تر قردله مثلا ما الان راشی و مرتشی نداره بله ما الان عرباشراتو فلحکم داریم رواستی هم معتبر خوندیم یک رواست داری که عرباشراتو فلحکم صحبتون که خوندی. یک رواست هم دارش که عرباشراتو فلحکم به لال عزیز یک رواست هم دارش که این اجور رو سندش پیش مرمون صدوق صحیح بود اما اصطرین یک شباهه نیشون میده که قدمای اصحابی رو نیورده خود صدوق هم نیورده تو خسال و ماندر اخبار رو تو فهیه نیمازید. و یکی هم یه جدیگه هم بود درستان اما ار رشت و فلحفت تا حالا توی متونه ما ثابت شد. این متونه که ما داریم ار رشت و فلحفت ثابت شد. او جورال مزار به اصدازار سندش اما قدم ها خیلی روش حساب نداردن. بقیه یه ممایات رو هم بخونین تا بایین در نتیجه نهایی ما از اینجا چی درمیارید. باب هشت از عبواب آداب القاضی این جلد به اصطلاح وسائل چاپ مرموم آی ردبانی هم این جلد هیجه چاپ آی ردبانی هم میتونه آی ردبانی هاشین ازشون خوب شده بودن. در جلد هیجه این یک اونم آی فرکل کلشون رو داره و که معروف شده به اسم آی ردبانی جلد هیجه صفحه 161 باب هشت از عبواب آداب القاضی عنوانش اینه باب و تحریم رشدت فلحک عنوان باب ایشون گرده لر من از سلطان علال قضا این ظاهر سلطان با سلطان جائر باشه سلطان و الا معلوم نیستی سلطان عادل داشته باشه که ایشون اوورده عنوان باب عنوان سلطان جائر باید باشه بعد از ترم سابقه من راجعه به ابواب حالا وارد دستشم اینجا دیاد دیم دیر چند بار خود هم اهل سنت مثل کتاب بخاری که هم از کتاب کافی امانه بشه شده اناوین ابوابش نکارت داره خود بخاری اونا. اناوین ابوابش نکارت داره آمین به قصد بخون لذا در اهل سنت در شرح عنوان بخاری یه نکاتی اصلا در شیل از از ابوابیشه خود بخاری عنوان قرار دار بر اخباری با قرار بر ابو حنیفه اینطوری احادیث این با عنوان این پیدا چون گفت امام مکتب رعی دیگه امام مدرسه ی رعی مقرار رو ها و رهبر به اصطلاح لیجره. این مکتب رعی بخاری به خصوص و او بعد و در بیان های ما خود بخاری مکتب خودش روشن الان تو ذهنم نیست نظرم اگه همولی باشه این تو زهن میشه خودش امام بوده اون خودش به الان تو زهن نیست در کتب ما کتاب در درجه اول کافی عناوین عباب خیلی تأثیر داره کهی آنه دقت فرق بکنه و تا هم در کتاب وسائل که ایشون نوشته هم شاپ قدیم و وسائل شاپ آلویز شاپ دیگر شاپ نه عناوین انابین کافی رو در خاشه لاغت استخدازه این نقطه مفیدیه من حالا یونوز چون روز آخر که روزا نقطه عرض بکنم این نقطه مفید نقطه نفتی... انابین خیلی چیز نیست خوبه تا زیادی کارگوشه هست انابین عباب مرموم شیخ سوسی نده اونا چون شرح مقنه در ذایی خود اون ف... فتوایی که در مقنه ها ارده ار اونطور زرافت نداره بیشترین زرافت در این کتب معروفه ما عناوین اقواب کلینیه اصلا در استثار اناوین اقواب داره اما اونقدر ارزش نداره چون من صادقا کنار ارد کردم ما اصولا از چند زاویه میتونیم حدیث رو جمع بکنیم یه زاویه جمع حدیث زاویه پتواهی و فقیه خود بساره از این زاویه جمع کرد زندقت بکنیم نزاز بزاره که و تحلیم نباشه چون نظرش رفت باز و تحلیم رزق از سلطان اران قضا و آقای بروجه اینی که از اسبابی که جامعه حدیث تعلیف همه همین بود اشکالش این بود که ما نباید جمع حدیث ور اساس فقر بکنیم ما با جمع حدیث ور اساس خود حدیث بکنیم کار به فقر نباشه باشه اناوید رو بر اساس فقر نکنیم یعنی به اع یه به ما گذینشی برخورد میکنیم مثلا روایات محدود و حساب خاص و مثلا روایاتی که در تحریم دلال راست میکنه و درازبر کراهت میکنه این روایاتی میاریم اگرم معارضاش توجیه میکنیم کل این معارضها رو اصلا نیاورده. اگر جای ما آرده مالا به تخییر مصولا امراض کل این گذینشیه ریواج برای کلینیکالیزه گزینه که به هر کس هر کامیده هم گزینی این دو سوبل گزینی شن و سادو فض مفاضلی مهمه که تا وشنه هردو گزینی شن انواین ابوا کلینیک دریک کره منعکس ناندی است آرام آثار اثر تلهای اشاره تماق کردی اشاره سادو سادو رفکو به کمیک بالجا انواین ابواش داره زیادی یعنی خیلی بار ریز نکرده. چرا جایی هم کرده و اونم انابیه اما محوم شیخ صورت چه استفساد گذیرشی نه یه هدفش استقصال بوده حالا استقصال نکرد. اما هدف ایشان استقصال بوده که کسی احلالیشان این نکاس رو در در کتاب فروع کافی اینطوره باب و اخذل اجرت و علی علالحک خیلی عجیبه دو تا عنوان آورده اجرت و علی علالحک لکن روایاتی که اولوزشون قدرت نیست مگه همین روایت آخری که همه ما بخونیم به الا روایت اجور القضاقه نهورده اون روایتی که اجور القضاقه من را کن نهده این جواهت هم کش مرحوم صدوق مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیل کرا حتی اخذ رزق علب قضا عنوان باب این قرار داده این ربایت در سلطان هم بر کراحت کرده یعنی رزقمنال قرآن شماد لطیف بود این ای که از آن نه در کتاب مرموم آده ربانی آمده نصیه ربانه و نصیه آل آلوزهی ما معتقدیم اگر بناس کتاب وسائل تحریکی بشه این نکات سمنی کتاب هم بیان چون کتاب کلینی کلینی مرد بزرگواری سقیه بزرگواری با حدود صدون این نکات زرافت های س یقفت نشده چیز دیگه هست اشغال من هر جلسی دیگه این در از اشغالات عرض میکنم مرهوم کلینی اینطور نهاره ترمیده بازه محمد و نیعقوب علیه علی ابن ابراهیم اینه ابن محبوب اینه دیگه کرارا نهاره کردی اینه دیگه این سنت تحیه تاریخش هم خدمت کتاب ابن محبوب نسخه ایست که مرهوم ابراهیم حاشم ا از تلی میراسایی که رو ناشین از که خوبه و غموزه میراسایی مقبوله بینه از خواب ماست قابل قبوله اما عبدالله ابن سنان حالا یا از کتابش یاره بایدش ابن محبوب ازشان نر بسن آن سوئل ابو عبدالله علیه السلام انقاض بین قریته یع خضومن از سلطان عل القضا از رزق فقال زاله که از سوه در اینجا به این دو نص مح... محوم صدوان گفتی و رواسته رو به ازنان ازن محوم اونه نصه ای که نصه ازن محوم بیترسید ناشین به قوم بازن. این حرف خوبیه این تمثب شده این بباید قیل از اجور رو این هم داره زاله که صحبتون خب بیدین شما ملاحظه فرمودی که خود مرحوم شاهد و, و حد با این که این بر رو بود یه اما سهل و سهل که با باب و تحریم رشدات پرهوب و رزق از سلطان حدر قضا تحریم و رزق سهل و, و هم در ظاهر که شکر هم تحریم حالا چکار بارد که تصادفا ادهی از خب سلطان رو حرام نمیدونن از کردم راجعه کاری که قاضی انجام میده یکی اصطلاح رزقه یکی اصطلاح اجر یا اجرت یا جوله اصطلاح جول یا اجر یا عجر اجرت اونجایی که طرقه این قاضی بدن رزق اونجایی که حکومت میده هم رزق اصطلاحه میگنه هم اجراله هم میگن در بقیقه عرب مثلا امیر المومنین کلان رو قاضی قرار به اجراله هم کلی اومن کرد این اجرال یعنی ماهان شهریه یا روزانه یا هفتی اینجا مثل مرموم استاد رزانو تاراله به دی از سقابه هم صدو رزق رو یه رو هم اجرد حرامه بعضی رو گفتن نه حرام نیست خب رزقم حرام بعضی گفتن نه هم رزق حرام هم حرامه هم اجرت بعضی گفتن نه اجرت حرام رزق حرام نیست اون چون در این روایت خوب رو کنید مرموم صاحبه ساله هم حواسش جمعه باب و تحریم رشتی تلحق لر رزق یعنی سال, سال چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر رزق از سلطان حرام شد به طریق اولا وجهت هم اگر رزق از بیت مال ماله حرام شد اجرت که طرف این میدن به طریق اولا با که انصافاً به نظر من با صدوقه از این رواد برمت رزق رو در نمید که سال استفاده شد احتمال بسیار قدیل داره قاضی دین خریتین یه خود و سلطان مراد ظاهره که مراد سلطان جاهره یعنی مراد مثلا قاضی در دستگاه زرمه این مراد این ظاهره چون اگر مراد قاضی بود که مثلا شیعه بود قاعدتا اگر مخاصره رفت بگر از اماما ساده رو میگره یه قاضی شیعه در یه جا باشه از امام یا از پس ولی فقی مثلا به قطع از این که انقاض بین قریهت این واضحه دیگه یعخوض من از سلطان علالقضا از عل رزق به ایلو میگفت یعخوض رو مثلا از اصحاب انا مثلا یا میگفت یعخوض من فوقها انا یا به اجازه شما که ایشون اجازه دادی ایشون رزم دید خیلی بعیده که مدار یعخوضو یعنی این رزق بر قضا به عنوان حرام باشه مضافن به این که شوارد فراوانی هست که حتی از زمان خود پیغمبر پول حتی در روات اهل سنت من در شیعه نایدم اگه آورده بعد نیست اطلاع درش اما در اهل سنت نمیگن که پیغمبر که امین و ممدونه چون پیغمبر دو بار بیان هر هم برای تعلیم هم برای غزوات اینران جو بین مردم غزوات بکنن کنه چه که سیدره بعد همه امموین به بعد در بعد از اوقات من در همهش نایدم اخیرا میدم که جعل له رزقا خود فیغمبر یک ماهانه برای امیرمونه قرار داد در این مدتی که در یه من بودن این هم نوشن اما الان تو ذهن نیست از علمای شیعه الان در روایت شیعه یاد و هر حال این روایت اولی که ما در اینجا داریم روایت دوم است که باز مرحوم کلینی نقل کرده این روایتیه روایت بسیار مفصلیه خیلی مفصله و روایاتی است که در مسائل مالی مالی دیتر مال خیلی تأثیر داره و همچین خیلی از مسائلی که میگرده به اقتصاد استدار موزمان حتی در کلام اقتصاد کلام انصافا بسیار روایت مفصلیه البته مرسل هست حدیث مرسل کنال سرندشی میخونم اما خیلی فواید داره فوق العاده فواید داره احساسا توی مسائل مدیت زنی ها بلکه میداند من این ها بشم خیلی این روایت طولانی مفصلی است این روایت رو مرمون شیخ کولینی رضوان الله و الله نقل کرده در شیخ توسیم از ایشان صدوق هم ندارد هم علی ابن ابراهیم آن عبی که آن, ان حماد ابن از پدر ابرا... علی ابن هاشه چون ساکن کوفه بودن کتاب های اصحاب رو حدود باید سال‌های دیویس دیویس و ده بیست کتاب های اصحاب رو گرفتن و به قوم آوردن و به قوم نشد دادن یکی از اوامل مهم نشته تراسشیه در قوم همین مرحوم ابرمه هاشمان اما هممادر نیتا که از اجلای اصحابه هم بعض اصحابه انا. این افصادشی اما روایت خیلی آثار عجیبهی داره و این دوای کلینی که این باید نه ولی توی باب از آب آوردن آدم هم شیخ و تیکایش هم توی مغازه اونجا جا بوده تیکایش بوند و تو بوده ولی حدیث آقا حدیثی حدیث با برکتیه حدیث آثار کنابنداره از اصول کافی بوده که از این استدلالیه چون توی اصول تو اببال وجه مردم کلینی حدیثی حدیث آورد. آنل آبده صلیفی حدیث ان در خونس و انفال و راست این حدیث خیلی آثار عجیبی داره قال و الارضون الارضون التي اخذت انوطن به خیل و رجال فهیه موقوفتون عراضی انوطن با جنگ گرفته شد خیل یعنی رجال با مردم او نازم. عراضی که به نحوه مفتوح انوطن هست با جنگ و کشت کشتار گرفته شد فهیه موقوفتون مسروکتون فی ید من همه ها و یه ها موقوفه در اینجا نه لخص اصطلاعیست یعنی میتکسی نمیشه اراضی عراضی ملکه کسی نمیشه فقط افراد میدن اون کار میکنن من تازهی هم چند احراجی برازه خراج اصطلاح ممگین به زبان پاسی زنی زم... های درامرزا درامری بول کلمه خراج یعنی آمد خراجی خراجر ر خراجی خراج در باقره نمای چید را میده. اون نمایی اون چیزی که هلیش به درسید اون خراجش میده این عراضی خراجی اولش توی بود من توضیحات چه از خود اهل سنت همی اختلاف دارن ظاهرا اختلاف اختلاف در حکومت بوده یعنی در اون دیوان مالیاتی اختلاف بوده که آیا عراضی خراج خصوص اراغه یا نه غیر ارا� چون ما معیار می گذشتن هر زمینی که آباد باشه آباد زور شمشی گرسی خب همین خراسانو خیلی از مناطر دیگرم با زور شمشی گرسی اینا رو خرابی حساب نکنید این همه توضیه ها داشت تا بگرم از فرقی توضیه مفصل می نخواد و اگرم آقایی مخواد رجب این برد از تقریبا در میان شیعه زمان سخبیه بعد از این که رفتن این که را چون هم نادرشاه و هم بعد سفر قبل از اون نادرشاه سفریه یه مدتی عراق رو از دست عثمانی ها در بردن به خاطبی که مثلا مراقب در معلی هستان در بود در اختیار این در اون زمان چون مرموم معقل کرد که بود یه دفعه بست درگر بنشیه که کسی مالک زمین عراق میشه یا نمیشه قرار من گوید مسرح میشه دیگه خب این همه مدنسی در عراق هست نه همه اشکال دار تمام اوقاف مساجر حسین یا همه شون اشکال دار میکنیستن از زمین عراق میکنیست یعنی و یه موقوفتون مسروکتون فیلیت من یا همه ها یا یه هی ها سابقا از کلم مرحوم محقق ترکی رساله این روشت مقدس ازلی رساله رو این روشت مرحوم شقه بارین سلیمان حقیفی رساله رو یا روشت که آیا زمین این اشکال از زمان ما خود زمان اومر اشکال آمد که توضیح داشت بعد زمان عمر از زمان اومر اشکال آمد زمان اشکال بعد از زمان اومر مثل ابن هد ابن هد ما قبول نداره اینه که شرح کل شرح چیز دیم سم زکر از زکات و حس پتل امان امان در اینجا به کارمنده در لحظه آمد چون لبه آمد. الان اعرابها به کاسه علقل هو قول عامل اسلام مرادشون کارگره کار حقوق کارگر. الان در ذهن عملی معنی کارگره اما در ایده از زوالات ما این جور ذهنی روابط عامل به معنای کارمند است کسی در اداره دولتی کار میکنه مراد کارگر نیست کارگر اصطلاح چیزیه که یا یک معنی لغوی یا معنی اصطلاحیش این معنی بیان ما کارگر دیگه یه کار انجام نمیده یه کارگره یه کاری اون که خدا در مقابل سرمایه‌دار کسی که در ماده خام تصرف میکنه که او را قابل انتفاع کنه مثلا آهن میگیره توش کار میکنه مثلا تلویزیون مثلا فرض کنید اجزاءستون در دسته رو تلفیق و سیمونای میگیره به این صورت در می اینا اصطلاح کارگستند اله انقار و یؤخذ الباقي باقی، بعد میگه زکات بعد از آنکه و عوانه. اون نصفت و آمه نصفت به آمه و نصفت دولت این رزق میشه الان دین الله و فی مسلحت ماینوهو من تغییرات اسلام و تغییرات دین این رزقی که در به تلمان میاد این برای این جنگه برای تغییرات اسلام و دین و فی وجوه جهاز برای اموال جنگ و جنگه و اینا و که این که من مافیه مسلحت الامه سن نقال ان الله لم يترك شيئا من صنوف الانوار الله شیرین هر ارسال داره بسیار ان الله لم من صنوف وقتی اکثر بعضی دوستان جمع کردن انسان این روابط گیلش تامین داره داره جمع میکنه کتاب خود میشه هر آدمی دوش کل داره هر حرف کلان هر حرفی که منکان کلان یه روایت هست این ما منشریه لمیا توشی ان مسنو بالانوار الله خیلی مجموعه اشایینی میشه. خو که در شریعت هر چیزی که معلوم شه، را امرین نشه، این جور نیست. از اصول مهمات و اصول الاعله، و اصول ایمنی شو اما اگه جمع بکنه به حساب اطلاعات، خیلی مجموعه زیباتری میشه. كل این هم یک کلیه دیگه خداوند متعال هر حقی رو به صاحبش الخاص باته بالآمن والفقراء بالمساکی و کل سن فمن سنون فمن ها همه اتساق گذاشت ما در بحث اموالی که متعرض شدیم چند سال پیش در بحثی بلاید عرض کردیم یکی که انبال رو هم مسخره شد نوشته مترج هم مسخره شلوه، مثلا زکات از کجا گرفتیم میشه در کجا مسخره میشه؟ خوب از کجا گرفتیم؟ جنب انبال از کجا گرفتیم؟ یا در کجا؟ تمام اینها مسخره و مسخره. این خیلی تغییر زیبایی تمام کرده. اینالله هم یه سوگشت من سموخ الناس من سموخ انبال الا وقت کسانو. تا کل دی حتی حتی الخاصه سطر و الفقران المساکیم و کل دسته فیلم این بجرد. این حدیث حالا اجل این ایشان دینه حدیثی تو من ما ایشون فرمه عبوله که عبوله این چون آمده سال و سال داره این نقطه یه هرومنه ها جواز و رزقل قاضی رو بکنه توش نداره انصافه تو خود حدیب نید این استظهار سال و چون داره و یوم خلالبادی فیقون و بعد داره ارزا و اعوانی ایشون از کلنه ارزا و اعوانی در آوردن که قاضی مزه و این انصافه شیلی تحجیب و حساب وزاره اخباری، اخوالی خیلی دقیق هست توشتر نمیاد آن و احوانی را که وزر آن کارمنده دولت مثلا اموال مثلا آملین علیه ها به تحجیب آیین مورد انایه این هم روایه بعد از این روایه به اصطلاح سماهه رو داره شماره سه بره من من. این رواسته سمهای رو ما در بحث گذشته خوندیم اصانید متعدد و مکنون متعدد توش داشت همه شای افل حکم موال و گفتیم که ایکیشن کسل حجام داره مشکل داره کسل حجام داره شاید داره دیگه تکار نمید روایت بعدی که در اینجا آوردن روایت یزیده اونه پرقده وکه این روایت در نسخه ایشان در نسخه صاحب وسائل در اینجا آمده. ان محمد ابن یحیار استاد کلیگی ان احمدن و محمد اشعري، ان محمد ابن سنان ما اینکیشون ضعیفه اما احمد اشعري در سفر کوفه آثاریشان به قوم بودن ان ابن مصخان یا مصخان که سغرس ان یزید ابن فرغت نمیشنسیشون قال سلط ابا عبدالله عليه السلام ان بخت چه عجیبه این شد بخت آورنده اینجا فقال هو ورش و خل هو چه عجیبه ظاهرا نصیحه این بوده لازم که محمد بن حسن به اسناد در احمد مثلا بو الا انه قال انه این اگر دوست باشه نقلی من چه کتاب کافی دوم استفاده داشتم یه واسه گرایاست این چند واسه در داشی واسه اختیار مرحوم صاحب وسائل بوده تو سی وسائل بخت همون کافی که ما الان داریم مصوراه این کافی الان شاد هم با 16 تا حاشیه با 16 تا نسخه مقاوتات بده نگاه بکنن اما این کافی که الان ما داریم این سفت الان این کافی که ما داریم سفت اما این خوبه سال صاحب و کتابی دقت کردی اینجا اختلاف نسخه مشاهده شده این به خاطر اینکه اول اما این ظاهرا تینو کرده اون سفت و در تنظیم هم سفت شده وقت می‌بخشید حدیثی بخونش چیزی داره برمی‌اش چیز نداره این حدیثا تمامش حدیث شماره پنج و به اسنادی زمینه اسنادی به شیخ طوسی برمی‌گره ان محمد بن علی بن محمد که اگر محاسن در اول سند باشه دیگه تقریبا منحصل به شیخ طوسی است اگر اون اواخر باشه تذور هم گاهی داره حالا اگه شیخ محمد بن علی محلیش قطعاً کلی نمی‌بوردش لازم باشه چی حدیث هست؟ نبت در طورش انفرازه شیخ سوسی ان محمد ابن ایسد نعبید سرعز ایشان ان احمد ابن ابراهیم کرمانی نمیشنستیم شوش بکی ان عبدالرحمن ان یوسف ابن جابر این اصلا درست اسم ها ممکن اصلا عبدالرحمن ابن یوسف ابن جابر باشه یا اسم اصلا غلط نمیشه شده الان چون راهی نداریم این سه اسم اخیر احمد ابن ابراهیم کرمانی و یوسف از نجابل بنده باید تحرید دانش که سیگه نشیم تحرید تحرید که این به مجبول مطلق یعنی هیچ از این ممکنی اسمشون این نباشه اسم غلط کده باشه بله قال قال ابو جعفر علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظره الى فرج امرأتیم ام و رجلن خان اخاهو فی امرأتیم و رجلن احتاج ناسو علیهه این احتمالا رشه احتمالا جور باشه مزد بخواه ظاهرشون داره این باشه نه این که پول بگه به نخیل یکی الان این حدیث بله مشکل داره به لحاظر مدلول هم مشکل داره چون طبقینگوات ممکن است که ای این اجرت هم رشه حساب شده در آمه حکی رو کنم حکی رو رو تا تن باتایی خوی حکی این که میشه و احتمال این داره احتمال احتمال دار رویش رو بید باشه من داره احتمال به نرمه کنم احتاج یعنی احتاج شما, شما از شما فریاد بگیم این بگیم بی پول یاد نمیده همون بخش اوصلا پولیه پس علاقه همون رشده در این جد اگر این باشه این رشته مراد معنی لغتی آم باشه معنوم نیست بر معتی حرام باشه بر آخر حرام این دارم شما همین مقدر بگیم این که با خاطر فقه پول بگیره کارش حرامه اما اون دوچه های محاد احکام دنیا دیگه راهی نداره برایش حرام نماشید این یک نقطه ایست که بعد یه آشاش باید استودال فقهی بشین این تو رو باید مده که باید شنبه یه روز شما محرمی کشید و الله محمد